حال انجام نماز اگر کارگر ساختمانی با لباس کار نماز میخانا چگونی است با این کارگرهای ساختمان که هنوز خوبا کارگره میکانی با لباس میکانی کی که مستقی میدن اون که بغل دستی خوش جمعی تو لباس من کسی میشن نماز با لباس کارگری بالباس میکانیکی مکروه هست جائز نیست انہار بیرون کنید داری ضرورت پروردگار تا مناجات میکنید با همون لباس میری بیرون با همون لباس نماز بخون ا کارگر کارگا ایک ایک میکانیکر گفتن که آقا معصز بو میده از دست لباس تو معصز بو میده حالا که ما کی چھیا نفر بعد کی لباس وضو کرده فازہ هم پوشیده واجی معصز بیات کنری آقا ایسته فاصله در سش مییاد خلل مییاد و خلل در صف هم مملو هست فاش کسی بشو این هم مملو هست جایی که باوجود باشه فرشتہ ها نمی نبی مکرم اسلام فرمودند که وقتی که سیر میخورید پیاز میخورید دهنتون بو میکنه مسجد نیاید. زیرا که فرشتها ازیت میشن از, می از چیزهایی که انسانها ازیت میشن حتی افرادی که به بوی بغل یا بوی دهن گرفتارن بیماری دارن که بغل اونها بو میکنه عرقشون بو داره یا دهن بو داره قلب اون به خود معده اونها خرابه این چنین شخصی مسجد تشیف نمیاره خونه نماز بخونه این تاریخ جماعت نیست همونجا نماز بخونه چون داخل مسجد آدم ها اذیت میشن در مسجد فرشته ها اذیت میشن این احکام شریعتان پس لباسی که هواسپرتی بر برای خودش یا برای دیگران چنین لباسی مکروه است نماز را نخوانید